بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اینه همون خیر و ناصر و ناین نا و الله و علیه سیدنا محمد و آلیه تاهیلی اللهم سلاله محمد و آلیه محمد خب ما در بحث جایگاه حدیث در علوم که در عمون اسلامی درستمون رسید به جایگاه حدیث در تفسیر که جایگاه حدیث در تفسیر رو یه مقداری برای شما توضیح بدم یک مباحثی هفته گذشته داشتیم بفرمایید یه مباحثی از سبت هفته گذشته داشتیم که یه مقداری در خصوص جایگاه حدیث پیامبر به معنای نقش پیامبر در تبیین قرآن کریم بحث کردیم و برای شما گفتیم که پیامبر اسلام به حکم قرآن کریم مبیناً و چون به حکم قرآن کریم مبیناً یه روایاتی دارند که این روایاتشون بگونه این میتونه تبیین آیات قرآن باشه و این روایات رو امروزه ما میگیم روایات تفسیری و شکلی از تفسیر رو میگیم تفسیر اثری یا تفسیر به معصور یا تفسیر نقلی اینا مسائلی بود که هفته پیش بحث شد و آنچنه که هفته پیش بحث کردیم دیگه نمیخواییم برگردیم دوبارم بگیم خواست فقط زمینه بحث بیاد دستتون اما یکی از مسائلی که در بحث تفسیر اثری یا تفسیر به معصور مطرحه، اینه که مصداق اثر چیز مصداق اثر چیز یا مصداق حدیث چیز حدیث تفسیری چون اثر در مقابل رعی یا اجتهاد ما گونه ای از تفسیر رو داریم که بشن میگم تفسیر اصدی یا تفسیر نمینی گونه دیگه از تفسیر رو داریم بشن تفسیر برعی تفسیر اجتهادی حالا نستاغل اثر چیست؟ که تفاصیلی که اثر توشه ما عدل پاکی میشه این تف... تفسیر اجتادی یا تفسیر برد در این زمینه در پاسخ خود این که مصداق اثر چیست بعضی ها میگن که اولین مصداق اثر خود قرآن میم مثلا تفسیر به قرآن که استعال تفسیر قرآن به قرآن که حالا در این ما شک که بالاخره اگر آیه‌ی از فرآن شاهده آیه‌ی دیگر از فرآن باشه پایده‌ها این بالاترین و به ترین نصلاح به اثره ولی فیضاً این محل اختلاف شیع و سرنی نیست که می‌خوایی در این زمین صحبت کنیم فیلاغاین بعد از خلاف فرآن کریم که اصلا محل بحث ما نیست از نظرش شیعه اثر تفسیری عبارت از یک روایات رسول خدا دو روایات اهمی علیه سلام در تفسیر آنید از نظر اهل سنت اثر تفسیری عبارت است باز یک نهایات رسول خدا تو آرا صحابه و اجلاء تابعین این کلم تابعین مفسر تابعینی که به علم و به دانش شناخته شده هستند راجب صحابه تخصصی ندارن مثلا بگن که بعضی از صحابه ولی راجع به تابعین، بعضن میگن اجنای تابعین یا میگن رعوس و تابعین مثل تأمیر وضعیم که رعوس و تابعین یعنی اون تابعین خیلی بلند مرتبه که در رقص برای میگنم این خوشه مصداق اثر تفسیری حالا دلیلش چیه؟ دلیلشیه که شما اگر به تفاصیل اصلیه چیه مراجعه کنید؟ اصلا تفسیر قومی، تفسیر انگیاشی. شما می‌بینید که این تفسیرها فرقامی یه ربانیت رسول خدا و ربانیت عیمه علیه سلامه. می‌ده مهم‌ترین دلیل بر بقوع شیع، بقوعش واقع شدن شدیه. آفتاب آمد دلیل آفتاب اگر به تفاسیر اصلی اهل سنت مواجه کنید مثل مثلا جامع بیان تبری تفسیر ابن کثیر دمشقی یا مثلا تفسیر الدر منصور شما در کنار روایات معادی صحاح و بلکه هزاران قول می‌بینیم از صحابه و طابعان. اسمش رو هم گذاشتم تفسیر اصلی و سبت این دیه اسمش دیگه توشه بیگه منصور و تفسیر ولمعصور یعنی که در تفکر آی سویتی تفسیری که مال آمال از آراع صحابه و اینه، این تفسیر منسوری. خب اگر ما بخوایم از‌یابی و قضاوت نداشته باشیم با همین گزارشی که من دادم باید میریم سراغ یه چیز دیگه. یه بحث دیگه برای شما بکنم. اما اگر بخوایم زمینی که درس میدیم علاقه بر گزارش یه داوری هم داشته باشیم. یه داوری هم داشته باشیم. خب، پس کنم خدمتون این داوری که ما می‌تونیم داشته باشیم با طرح یک سوال ممکنه پیش بیاد. و اون گیره منشأ وجیه‌یت اثر تفسیری چیست؟ منشأ حجیت اثر تفسیری چیست به چه دلیل ما معتقد هستیم که قران کریم باید به وسیله یک سری اثر یا آثار تفسیر بشه و اصلا خود اون اثر یا آثار حجیتشون رو اعتبارشون رو از چه جاهایی میگیرن خب ببینید این سوال میتونه در باره تیانبر مطرح بشه درباره اعمه مطرح بشه درباره صحابه و طابعانم مطرح بشه و مطرح شده و پاسخ یا پاسخهای اونها هم دیده بشه که آرا من خیلی به اختصار خیلی به طور تفسیری هم بحث نمی کنم بلی لابن به اختصار بعض از پاسخواهی روی وجود داره برای شما میدم من اینجا عرض کنم ختمتون قبل از اینکه به این سوالا بپردازم به بردازم که منشه حقیقت اثر تصمی چیز چه در باره پیابرد و احمیل سابو متابعان ممکنه یه سوالی برای شما پیش بیاد این سوال رو هم ترک می کنم و براتون میگم گرم این سؤال اینه نظر شیهه درباره آراء و نقله های تفسیری صحابه و آن چیست؟ این یه سوال دیگه مثلا ما الان دوتا مکتب رو برای شما نوشتیم در بین این تا مکتب برما یه ممکن ممکنه پیش بیاد که نظر شیعه در حال آراء و نقله های صحابه و طابعان چیست؟ تاظر ممکنه ی سواله دیگه هم اینجو مطرح نظر اهل سند درباره آراء و نرقه های تفسیری اهمه چیست؟ اهمه چیست؟ ما حتی متقابل سآله اینجا بکنیم که گماشوش به این سآلات هم اگر لازم شد ما خود بیدیم حالا این کار رو میکنیم یکی یکی، یکی پس از دیگه راجب منشأ هوجیت اثر تفسیری چیست اگر که این اثر تفسیری از آن پیامبر باشه خیلی کار راحته خیلی کار راحته ما در واقع میگیم که منشأ حجیت اثر تفسیری پیامبر قرآن کریم است. یعنی قرآن کریم به روایات پیغمبر چه حوزه تفسیر باشه چه تووزه فقه باشه چه توضع کلام باشه قرآن کریم به روایات پیغمبر حجیت می‌ره پیغمبر حجیت روایات خودش از قرآن میگیره؟ اگر ما قرآن اونم ظاهر قرآن نصوص قرآن حالا ممکنه شما بگید اصلا خود قرآن هم که تفسیرهای مختلفی داره من میگم بالاخر در قرآن ما یک سریع نصوص سریع داریم که این نصوص سریع میتونه با ما کمک بده که یک حجیت یک بولی از روش در بیاد مثلا وقتی که قرآن کریم راجعه خود قرآن خود قرآن از یک طرف به پیغمبر یه شما تبیین کن. از یک طرف هم به مؤمنین یه سوال سوالاتتون رو از اهل ذکر بپرسید اهل ذکر یعنی مطلعین دیگه خب یکی از مطلعین قرآن خود پیغمبره به مردم یه فسعو اهل ذکر الکونتون رو تا تعلمو اگر چیزی نمیدونید از آگاهان بپرسید به مردم بپرسید به پیغمبر میگه تبیین کن و امزر نایله ای که از ذکر لطوبه ای نهده نا ناسه ما نصده در پیره حالا میشه که تبیین پیغمبر رو هجت نباشه شما مردم رو دارید به سمت پیغمبر صوب میدید مردم ها به از پیغمبر صوب میپرسند میشه حالا مثلا پیغمبر که جوابی میده جواب هجت نباشه خب بیر ارشان که لعبات میشه قبلن ما نماه حجت خبر واحد میگفتیم بعضی از این آیات رو اونجا گفتیم یا مثلا وقتی که خدای تبارک و تعالی به مؤمنین دستور میده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول خب این اطیعوا الرسول اطاعت از پیغمبر بخشی از اطاعت از پیغمبر میتونه به معنای در نظر گرفتن مطالبی باشه که پیغمبر گفتن و این مطالب ما به رسمیت بشنسیم بر اساس این مطالب عمل کنیم اطاعت از پیغمبر که قید و شرط مداره در قرآن در قرآن می‌فرماید من الرسول فقط اطاعت الله این مطلقه ای اصلا اطاعت از پیغمبر مصابی با اطاعت از خداست یا وقتی که خدای طباری پیغمبر می‌فرماید ما آتا کمور, رسول هر امری که پیغمبر به شما میده بگیریم می ما نما من رو فرید هرچی هم پیغمبر شما رو نهی میکنه باز ایستید توقف کنید یعنی عوامر و نواهی پیغمبر چند رازمون بجرام و تازه در بعضی از آیا خدای تقاربتالا به ما یک اطمینانی میده اونش خیلی مهمه بر اساس این اطمینان پیغمبر حرفی که میزنه فرا اجتبادی میشه دسمه که میفرمایه ما انتقا هوا اله هو اله وحیال یو ها پیغمبر اگر چیزی میگه که بر سبیل هوای نفس نیست هرچی میگه این ما مطلب اعم از آیه هایی که قرآن وحی وحیه آیه‌های قرآنی که پیغمبر، قرآن وقتی در اختیار ما قرار میده تا سخنان حکمت‌هاویزی که بیان می‌کنه ما یا اتقال اله‌عبا، اله و الا و یا در همین زمینه آیه سب و پونزده‌ی سوره‌ی نسان قرآن خدا دو چیز به پیغمبر نازل می‌کنه هم کتاب، هم حکمت و انزل الله عليه كل كتاب اول حکمت و, و علم کما آدم تكون تعلم پس پیغمبرات از آنچه که از خدا مطالبی بشنوه و یاد بگیره اصلا از خودش حرفی نداده از خودش حرفی نداره حرف های پیغمبر میشه در وحی داره چه اون بخشی که به عنوان قران بده و بهش اسم دادن وحی مغلوا یعنی وحیی که به تلاوت درمید، چه قرآنه چون بخشایی که مواعظ ایشونه تبینه های قرآنی ایشونه حکمت های ایشونه که بهش میگن اونم وحیه ولی که وحی غیر مطلوبه غیر مطلوبه پس خودت خود تایان بر منشعه و گلجیدشون براحتی از قرآن قابل استقبال این نقطه اول می رسیم به ائمه علیهم السلام، می‌رسیم به صحابه و طالع. در درباره ائمه باور شیعه من وقتیون آره در کلاس اونم هم همین شیعه است، هم سنی گزارش میدم. میگم باور شیعه اینه که ائمه حجیت اصلیشون رو از دو را میشه ثابت کرد باور شیعه اینه که از دو طریق شود حجیت علی ما ثابت کرد البته این دو طریق خلاصش برگرده به یک طریق مهم و اون کسی که صاحب حجیت شده که رسول الله چون پیغمبر خودش صاحب حجیت شده که رسول الله هر حرفی پیغمبر بعد از اینکه هرژیت پیغمبر ثابت شد پیغمبر می‌تواند این هرژیت رو از خودش به کسی تسری بده تسری بده اما پیغمبر که می‌خواد هرژیت خودش رو تسری بده پیغمبر به دو شیفت رو تسری می‌ده یک با استفاده از قرآن دو بی استفاده ای از قرآن پیغمبر در راقه منشه وقتی حجیت خودش ثابت شد وقتی ثابت شد خودشون حجته حرفای خودشون سند مدرکه پیغمبر بخشی از این حجیت بودن خودشو تصری میده به احلی ویدش بعد در راه این تصری تصری حجیت به احلی گاهی از قرآن استفاده می‌کنه، گاهی از قرآن استفاده نمی‌کنه گلیم اینجا دو تا حالت می‌شهد اون موقعی که از قرآن استفاده نمی‌کنه خب، مثلا حدیث سقاله پیغمبر می‌فرماید اِن ای طالبون فیکم و سقاله که تابالباهه و عقلتی من یه از دنیا میرم دو تو چیز برای شما میگذارم دو امانت عرضش میگذارم یکی کتاب خدا، یکی کترت و عهدبیت خودم یقینا پیامن نمیخواد با حدیث سقلنگ یک رفتار آتفی انجام داده باشه یعنی مثلا عهدبیتش رو دوست داشته باشه بخواد در مورد اهل بیتش یک سفارشی به مسلمانان کرده باشه این میشه رفتار عاطفی نه پیامبر کتاب خدا و اهل بیتش رو در ارتباط با مسئله بنابرای هدایت مسلمانان نام میبره بس, بس چون در ادامه حدیث میگه که ما این تمسکتون به ما لن تا دلو شما دنبال این هستید که گمراه نشید شرایط عدم اون گمراهی در تمسل به کتا و اطرت هر دوی هر ما این تمسکتون به ما لن تا دلو چرا؟ چون این ها ما لن یفتره قرآن و اهلویت از هم جدا شدنی نیستند نیستم قرآن و اهلویت از هم جدا شد نمیزن یعنی چی؟ یعنی همیشه قرآن تو جیب اهل هست؟ خواهی به باشه من این قرآنی بذارم تو جیب قرآن از من جدا نشه من از قرآن جدا نمیشم این که منظور معییت فیزیکی نیست معنای اِنَّهُ مَا لَیَفْتَرِ قَالِینِه که حقیقت مقام قرآن بیانات قرآن نزد اهل بیت این شما دنبال این از که حقایل قرآن رو بدونید بید خود به اهل بیتی از اون طرف قرآن معرف مقامات اهل بیته اگر خوب خونده بشه اگر خوب تفسیر بشه یعنی هم قرآن معرف مقامات اهل بیته هم ها قایل و بران از اهل بیت وصول کرد این معنای امنا هم بله یفتره اما از کجای حدیث سقلن خودجییت اهل بیت در میاد چون بحث الان بخص منشای خودجییت اثر تفسیر چیه از اینجای عرض شود حدیث حجیت اهل بید در میاد که اگر اهل بیت اگر احل بیت در مسیر خطا باشن فضل وقتا بعض از خطا باشه حق نباشه، سواب نباشه لازم و تمسک شد یعنی معقول نیست که انسانی که در مسیر خطا باشه در مسیر احتمال خطا باشه ما تمسک رو گیره بزنیم به انسانی که در مسیر فتاست هیچ آقلی که میکار رو نمیکنه پیغمبر اسلام که حکیمه و صاحب نجمته وقتی که سرنوشت منو و شما رو گیره میزنیم به تمسکه به اهل بیت میفرمایید هم قرآن هم عهده باید، با هم زامن اعدادیت هم، زامن اعدادیت. ما این تمسکتون احما نه و این اونا علی یفتر آهد تا ید علی که این ادامه ی اینا با همستن، روز قیابتم هم به من دوباره ملحق میشن. الان من تارکون، و اینا دوباره به من ملحق میشن. حدیث سقلن شما میدونید دوستان عزیز از احادیث متواتر و متفق علیه شیعه و سنیه یعنی هم در کتاب های سنت وارد شده با عبارات گوناگون هم در کتاب های شیعه وارد شده پیابر اسلام در موازع گوناگونی نهدیس و گفتن و در اینجا پیغمبر دیگه به چیزی استقلال نکرده سم به ای از آیات وران استدلال نکرده و ما با تحلیل حدیث ثقلای می‌رسیم به روحیات ائمه اطهار که معنی می‌کنه مثلا زید آیه‌ای حرفی بزنه می‌گیم خب این معنای این آیه است به بیان امام صادق معنی این آیه است به بیان امام علی معنی این آیه است به بیان امام باقر اینا جز اهل بیت ایون مراد پیغمبرم قرآن و اهلویت رو با هم به عنوان یادگاران گذاشته و از کنان ما باید اگر تا لقه هدایتی هم از سلط میده یک چیزی بالاتر از این مراجعه است مثلا یه وقتی من میگم که شما به قرآن مراجعه کنید قرآن چی میگه؟ باشه شما به قرآن مراجعه میکنید آیا تو قرآن رو میخونید ممکنه مرو خودت هم نه این مراجعه است یک اطلاعات علمی به دست آوردنه اما یه وقتی تو میگی چایی میزنیم تو اصلا برات مهمه که بدون نظر قرآن چیه که خودتو رو در قرآن قران قرار بدی ببینیم تمسل تو در قرآن مجید هم که والذینا یوم مسکون از کتاب و اقواس اِنَّا لَا مُدِی و اَجْرَلْ مُحْسَنِی هم فوق مراجعه است تو ممکنه خیلی ها به قرآن مراجعه بکنن اصلا ممکنه به قرآن مراجعه بکنن از قرآن اصلا منفی بگیرن چون که میفرماد به وصله این قرآن عده هدایت میشن، عده گمراه میشن خب گمراهان هم مراجعه گردن گمراه شدن دیگه یوزلو به کسی را و یهدی به کسی ر و ما ظل بیت الا فرصه ولی دیگه در تمسک به کتاب الهی راهی پیش نمیاد اما گاهی اوقات که پیغمبر اسلام میخواد به آوا اهل بیت رو بگه خود پیغمبر اسلام از آیاتی استفاده میکنه خود پیغمبر اسلام از آیاتی استفاده میکنه حالا گاهی با قول، گاهی با فعل، یعنی خود پیغمبر اسلام که میخواد مقامات اهل بیت رو و خجیلت اهل بیت رو به امتش بده، خود پیغمبر اسلام استناد کنند آیاتی این آیات فراوانه، بعضیاش رو فقط شیعه ادعا می‌کنه، بعضیاش رو علاوه بلکه اینکه شیعه ادعا میکنه. اهل سنت هم در تفاصیلشون و در کتارهاشون به قول معروف هندلی می‌کنن اونا هم روایاتش رو آوردن مثلا فکس کنید آیه اول الام یا الامر رو خب یا یا هدو از اینه الله و عقی الرسول و قلو الامره منخون می‌دونید این قلو الامر در بین بینشیده و سنی اختلافه به تفاصیل مراجعه از نظر اهل سنت ممکنه مسادی به قلول خلفا باشد، قوززا باشد، فرماندهان نظام باشد و به بزرگان حال دینی قلمان باشد. که حالا بیشتر اگر قلول اهم به مقامات سیاسی باشه میشه خلفا. حتی مثلا ممکنه رئیس جمهور مثل همدان مثل آقا اول ولی بعض از علما یه یعنی بسوندن بلی در شیع اول الامر اختصاص داده به و حتی خطاست که ما به فقهایی که ولایت دارند هم برحال توزعش بگیم، علا ما جمهوری اسلامی داریم در رأس جامعنم ولیه فقیه من دارم برای شما خطا است که ما بگیم که ولیه فقیه این مصداق اولوالعمره اولوالعمر از نظر تفسیر شیعی اعلمه احباره دلیل شیعه میخوام بگم ما نباید 400 اگه شما رو بگیم حکومت اسلامی تشکیل داریم ولیه فقیه این مصداق اولوالعمره حتی الله و حتی رسول و دلیلش اینه که اگر عطی الله و عطی رسول و اول که عطفه درسوله در اطاعتشو مطلق و بی غیب و شرد باشه اطاعت مطلق و بی غیب فقط شعن مخصومه شما که این دنیا فقط از مخصوم میتونیم اطاعت مطلق و از آدامی که در آن انحراف یا احتمال اشتباه احتیاط مشروع میشه اگر حد مثل هم مثل امام علی که مالک نعمه فلسطین 23 مالک اشتر فلسطین مثل به اهالی مصر گفتن که ان مالكم ابعثه و عطیه و من این مالیک اشتراک فرستادم شما حرفاش رو و اطاعت کنید. فی ما تا قبل حق تا وقتی که بر با میارهانی حق و بر اساس حق بنشودن بر خواهیم میکنه. حالا مالیک اشتر چقدر اول بزرگیه دیه؟ صد تای فوقهای های اندوزی ما اصلاح شناس است. ولی مصوم نیست. اطاعتش مشروطه. به فی ما تا بقید حق ولی الله و, و رسول شرط داره حد و حدود داره یا مطلقه خواهد به طرف که رسوله این تحلیل قرآنیش تحلیل رواهیش عبو بصیر میگه که من به امام صادق گفتم مردم سوالی سؤالی میگن چرا اسم علی ابن ابی طالب در قرآن نمیاد؟ امام صادق فرمود خیلی چرا در قرآن نمیاد؟ اما تعیین اون به بیان رسول بوده شده. شما من مردم جواب بده بگو که عدد رکعت های نماز در قرآن نمیاد. این رسول الله که نماز رو به دور سره کرد، چار کرد، تعریف کرد. نصاب زکات ها در قرآن نایمده. زکات شدود، نسابش چه داره؟ زکات نمیدونم، گندم چه داره؟ این رسول الله بود که نصاب زکبات رو معین کرد. عدد توافا در قرآن نایمده. این رسول الله بود که هفت دور هواف رو اعلام کرد. بعد امام صادق میفرماید، چون عطی الله و عطی رسول و اولوالعلم شد رسول الله اولوالعلم را به علی و حسن و حسین تفسیر کرد حالا اینجا سوالی اگر طبیعین قیل در مورد رکعتهای نماز نصابهای زکار دورهای تواف حجت و معتبر باشد میشه تبیین پیغمبر در مورد مصادیق علل و متعارف نباشد؟ حاصلاً نه. مگر که ما در اعتبار حدیث شک کنیم، خب یه اما اگر ما در اعتبار حدیث شک نکنیم که دیگه یک باوود و هوا نمیشه، یا پیغمبر مبین هست یا پیغمبر مبین نیست. هیچکس هم نگفته که تبگینای پیغمبر تخصیص اغوضه فقر داره اینو یک جامع ندیدیم هیچ عالم اصولی نگفته مگر اینکه یعنی ما در اعتبار حدیث شک کنیم و اگر بایدتاً چه فرق داره پیغمبر مولایی نگه اعتبار خودشان از مرآن گرفته حالا یه وقتی رکعات نماز رو تبگیم میکنه یه وقتی مثلا گاهی مثلا عمل رسول الله رو در زبیر علا الله اگر واقعاً این حدیث سدید باشه که مسلم در سدیه قل که چی؟ که وقتی که اِنَّمَا يُرِي دُلَّا غِيوزْقِ وَاَنْمُوَ رِجْسَرْ اهلالبعیت به طاقی حکومت تغییرها نازل شد پیانبر برای که مسادیر اهل دی مشخص بشم آمدم و به عمر سلام گفتن برای من علی و حسین و،, و فاطمه رو صدا بزنید بعد اینا رو زیر یک کسای ایجا دادن فرمودن اللهم این نها اهل بیتی از عنهم و, و تحیرها اون تفکیرها عمر سلمه میگه که منم خواستم وارد نشم برمون نه تو این صحنه شما وارد نشد تو قدره کوی هستی این نکه علا خیل تا الان خوبی هستی ولی از اون مساده و اهلوی بیستی مساده و عمل رسول و میشه شامل میشه میشه ما جا میشه. جا میشه. جا میشه. خب ببینید اولا زن حضرت ابراهیم تو همون آیه رحمت الله علیکم عبدالبه به بی صادر شده، نازم شده یعنی زن ابراهیم آدم بدی نیست رحمت الله و برکاتمو علیکم با این تعبیر قدید منطقه چرا شما استناد بمیکنید به آیه بسر حضرت بود؟ کم گه یا موغو کنهو لیسن آیا پسر مو اصل نمودن. این اهل اهلیا اون اهل یک هم و معنای خودشو داره. یه وقتی یه کسی از به طرفه خدا میگه انه ليس من اهلیت. الکسی که خدای تبارک و تعالی به وعده داده بود که من اهل تو رو نجات میدم. ولی خب اهلی که اهلیت باشه میشه زن حضرت نو جردنید و خب اهللک به معنی گوافش بوده یکیه ولی قرآن کریم میگه که وقیلت خلمنار محت داخلید زن دوتا پیغمبر اهلش نیستن زن پهیمنبر اهلشه دقت میکنید زن نوح و لوت آخر سوره تقریم رو بخونید و ضربالله او مثلا لذیب کفر و امرهتن نوحیم و امرهتن اینا کان تا تحت عبدیم من عبادنا بلی فخانت ها کنوا فلم یا ما انگونا نوزا و, و, و قیدت ما بینیم تبقی زن نو نه و نجات هم دیگه بگی پسرش که دیگه هم میگه این نبو لیس هم این چون این او عبد و غیر و ساقه فلا تسأل ما لیس هم که و قرب هم میشه فکارن هم این رو من که زیاد بحثات رو نمخوام طولانی بکنم چون میخوام به این هم اگر بشه درسته بله اگر ما این گزاره رو قبول کنیم که به این با بیان یا عمل مگر که ما در اعتبار گزاره شک کنیم این گزاره رو بکنم که پیغمبر گاه با بیان گاه با عمل خودش یه کارهایی کرده با استفاده از قرآن که تطبیقش رو اهل بید میشه مثلا در آیه مباهله در آیه مباهله وقتی میگه که فقر تعالی الله با افناه و افناه اکن و نسا انا و و انفوسنا و انفو تفاصیل به ما میگن که پیغمبر اصطورت حسن و حسین رو, رو برده که میشه نصداغ فاطمه فاطله رو برده که میشه نصداغ نصارانه با وجود که این آیه تو مدینه بوده پیغمبر موقع هفتش ده دو زن رو شد. نه دوتا از اون طرف انفسنا رو برده که میشه نصداغ علی, علی لذا، گاهی پیغمبر با استفاده از آیات و قرآنی که کرده که این نمونش میشه که تحلیل اون کارها خودچیت ازش در میاد و سلامیت شرعی ازش در که بدون استفاده از آیات و قرآن و حدیث سقلنی رو ایراد فرمودن که معلوم اداغه تماسفایی وقتی که حدیث سقلنی رو میگه میگه که خداوند بیان پیغمبر رو خودشیه و پیغمبر چه هست؟ و پیغمبر به بیان یا شخصیت اهل رو خودشیه بودند در واقع این جمله جمله ی ارنامه مواده حالا با این، با نمونه از این ها شیعه معتبد که revolutionary الیئهار علیه السلام در تفسیر آیات ها میشه فوق به نظر جایی یعنی اثر اثر به این معنوا چون ما اثر رو در مورد چی میگیم را و اشار. ما اثر در مقابل رأی شهادت خب این راجبی ای من به نظر میاد تا همین اندازه اکتفا میکنه، کنه به سراغ چی ثوابه و آه. صحاب و بطاب آن در تفاصیل محصور عهد سنت دو نقش دارن یک راوی روایات قیام برند یه نقششونه در تفاصیل اصری عهد سنت دو عصب صاحب نظر تفسیری مثلا فرش کنید ابن عباس در تفسیر این آیه اینو گفته بعد یه ابن عباس ارجاء نمیده به رسول الله مثلا ابن مسعود اینو گفته ابن مسعود ارجاء نمیده به رسول الله اگر ارجاء بده به رسول الله میشه راوی نمازات پیغمبر جای او با هم که ارجاء نمیده میشه نظر خودشون دیه حالا شما الان میدونید که در تفاصیل اصلی اهل سنت اینا معلامال از آراء اهل صحابه و تابعیه بعضی الا یه بحثی بین خود بزرگان اهل سنت اونجا پیش میاد که آیا اغلب صحابه و تابعین اونجایی که روایت میگن که یه بحثی اونرویی که نظر بدن نظر این شاخ اینا آیا حجته یا حجت یا حجت است اگه ما بخوایم برای پایه آراء اصحاب و تا و اون حجیت فرض کنیم این حجیت دلیل می دلیل می یا این دلیل بر مبنای عکس <تصفيق> یا این دلیل بر مبنای استنادات از قران و اگر این دلیل بر مبنای باشه خب تقریرش اینه تقریرش اینه که بگیم این صحابه و تابعین در نظراتی که پیرامون قرآن کریم دادند اینها این نظرات ها از مقام رسالت از مقام رسالت اون حالا اسم نمیارند ولی از مقام رسالت آموخته این عملی یه حدثه در این صورت نظرات از و صحابه و بر برمیرده به نظرات قسمونگاه یعنی بگیم که آراه صحابه و این چیزی جز آموخته های از مقام رسالت نیست اینا چکا میردوی هم بر بودن اینا ده های ده, آی ده آی آیات را پیغمبرم یاد گرفتم حدیثی که هفته پیش رو گفتم دیگه نفس که پیغمبر شکل کارشون رو دید که آیه در آیه تعلیم میدادن به صحابه و صحابه آیات و قرآن رو یاد گرفتن با مزامینش با مفاهیمش حالا بعداً بیان کردم یه جایی هم نقلت کردم که قال رسول الله قال رسول الله فعل رسول الله در این حالا آراء صحابه و قادعین به خودشون انتصاب پیدا میکنه انتصابش میشه به رسول الله فقط ما باید از این فرض رو داشته باشیم که اینا قفلت کردن بیگن قال رسول الله تا این حدثه، این حدثه چرا این حدثه؟ برای ما برای همین معنا هم دلیلی نداریم که بگیم مثلا فلان قرارداد کرده آخوی ببینید یه وقتی از یه قراردادهایی وجود داری. مثلا من یه نمونه از که پیش میاد برای شما میگرد امام صادق در کتاب کافی قلعینی میگه حدیث من حدیث بابام، حدیث بابام حدیث جدن حدیث جدن حدیث حسین حدیث رسولی حدیث حسن حدیث حسن حدیث ال المؤمنین حدیث ال المؤمن حدیث رسول الله حدیث رسول الله قول الله نهی از سنت جلی این حدیث تو کتاب ال علم کافی جلد اول صفحه 50 تمام شده به این میگن یه قرار داد آخر شاید مثلا امام صادق مواجه شدن به این مطلب که چونی الفاظی را سکوت دونه بگونی که نمیتونست بگه که حد دستانی عدل، قال حد دستانی، فردین، قال حد دستانی، حسین، قال حد دستانی، به چشنو به رسول الله؟ اگرم امام صادق میگه قال رسول الله بهش میگفتن که مجاز از خواهی، بین تو و رسول الله صدق مجاز حاله، واسقه ها کو یکی بار ایشون مسئله رو حل کرد، یک قراردادی به ما دارد، این قرارداد الان ثبت ما بهش اصطناق میکنیم، البته اگر حدیثش رو به قبول بخونیم، من میخوام از های این خارج نشد، یکیس موقع تو همه حدیث شرک کنه. او یه برسه دیگه، اما اگر این حدیث رو به پذیرین، میکنیم آقایشون قراردادش رو گفته، حالا شما نگاه بکنید ببینید از صحابه قراردادی رسیده، که هر وقت من آهی رو معنی کردم نظر پیغمبر رو دارم دیگرم ما چنون قراردارداری نداریم اگر شبشون خود علمای احد سنت بلدش میکنن بلدش میکنن ولی علمای احد سنت معمولا حدثشون اینه حدثشون اونه من الان دو تا کتاب آوردم سر کلاس که یک کتاب رو به شما معرفی بکنم یکیش کتابیه به نام آفاق تفسیر آفاق تفسیر این کتاب با آقای محمدنگیه مهدوی راده مجموعه ای از مقالات این مرد دانشمند، یه بحثی دارن به نام تفسیر در اصل پیانبر یه بحثی دارن به نام درامانی بر تفسیر صحابه یه بحثی دارن به نام علی پیشوای مفسران یه بحث چارو میم دارن تفسیر معصر کفایت ها و کمبود. چه امتیازاتی داره چه کاسدی ها و کم داره وقت گفتن جایگاه تفسیر از معصور، معصور از پیانبر معصور از امامان معصور از صحابه و گفتم حجیت معصور از رسول الله که همین منشهش برآن میشه حجیت محصور از امامان حجیت معصور از صحابه آلوان می‌خواه می‌خواه می‌گن این حرفا که من می‌زنم یه حرف‌های وجود داره. علما ازش صحبت کردن. می‌گوند چیت محصوره از صحابه؟ که <تصحابه> میگه که اصولیان عامه در نرمه‌های صحابه از یک سو و اشتادات آنان از سوی دیگر به تفسیق سوهن گفتن و در چند چونی آنها فراوان بحث کردند بعضی از آلما اقرار کردند بعض از آلما اعتدال بحثیدن از کنم خدمتتون. اینجا تمام این حرف ها رو آورده و یک کتاب دیگه هم دارم که این کتاب را هم بد نیست آشنا بشید، آسیب شناسی جریان های تفسیری. از حجت از اسران محمد اسعالی و همکارانشون آسیب شناسی جریان های تفسیری من این یک فصلی داره آسیب شناسی تفسیر سلفیان مدردن سازی و اون چرد بخشی به تفسیر صحابه و تابعیم که <تصفيق> نگاه کنید مثلا دلایلی که اینا دارن آقای ابن کسیر دمشقی از خدمتتون در مقدمه تفسیر و قرآن العظیم یه هنگامی که تفسیر آیه اینا در خود قرآن و صندت نیافتیم به اقوال صحابه رو جن. آنان نسبت به تفصیل داناترند زیرا شاهد قرائن و احوالی هستند که به زمان آنان اختصاص دارند و نیز آنان دارای تام و دانش درست و عمل شایسته هستند به ویژه قلم و بزنگاهشون یا مثلا شخص دیگری گفته که ببینید دکتر زهرمی. دکتر زهرمی پس هفت قرم بعد از ابن کسیر این بارات رو میاره و در جای دیگر تنها این جمله را با آنان می چون احتمال دارد ببینید که من میگم ممتنی بر یک حدسه این حرف آقای زهبی در از تفسیر و مفصل بقیم چون احتمال دارد آن آنان در تفسیر می از کی شدیده باشن؟ رسول الله از رسول الله شدیده باشن یعنی این خب صحابه رفع شایده پیغمبر دارد ما دنبال منشه حجیت می‌گردیم ما مثلا مثلا این مسئله این مهم یا باید برای منشأ این حجیت دلیل دیاریم بگی بر اساس این آیه بر اساس این حدیث یا به یک حدث و احتمال مدرسته می‌شوند به یک حدث و احتمال خود بزرگان اهل سنت یا آقای محمد حسین زهبی خوب از اهل سنته ابن کسید اینا از اهل سنده دیم قرآن خدمتون باز به و به پیروی وی دکتر منی عبدالحلی محمود می سرد امان رس مومد حجیس در تفسیر می نویسند شاهد نزول آیات و همزمان شاهد اسباب نزول قرآن بودند ناسخ و منسوخ را می شناسند بر قرآن و معناهایی را که رسول خدا بیان میکردند لمس کرده و میفهمیدند فهم آنان روشن از آیا روشن‌تر و بر اجتهاد و استنباط توانمندتر بودند در حقیقت اینا تاکیدشون اینه که بگن اقرباء ساهه ترجمانی از سخنانی که از پیغمبر برشن در دو از اعمالی که از و نگفته باشند، قال رسول این راجب ایمت. بعضی از علمای اهل سنت خب بعضی از علمای اهل سنت سعی کردند که علاوه بر این هست و تشمین که به لفت اینا تشمین زدن تحفظن هم از قول بیغمبر یه دلایلی هم پیدا بکنن یه دلائلی, دلائلی. میدونید که علمانی اهل سنت تأکید بر یک نظریه دارن مثلا عدالت و صحابه اونجز این های اهل سنته یا بعضی هاشون معتقد به مرجعیت صحابه هستن و سعی می‌کنن برای این مرجعیت صحابه به, به احادیسی متمثل بشن من خیلی تیشتالا گشتم گشتم دنبال اینکه واقعا ببینم در اینکه دولمای عهد و سنت طبقه صحابه و طبقه مرجعی نبینن و سر عدنده‌ی چیه؟ از قرآن نتونستم واقعا متوجه دلیلی بشن ممکنه بعضی از دلائه‌ی که از قرآن دارن بهفضی که درست باشه بر عدالت سهاح هووای بدهید مثل مثلا وکهزاری که جرناکن اومدن وسطا به ت و شاهدا عل و یک اوننه صول علق امتان اومدن میگم خب این جرناکن امتان وسط به مثل اولش در زمان بر، ساعوده ازش ادالات میکنیم. میگذاریم که چقدر این مسائل درستی و بالاتین بزرگتر این چیزی که بر مرجایت سعوده میتونه دلاد بکنه توسل به این هدیه که برای ما فرموده بودند اصحابی که نجومه به ایلوم از نکته مهمی تلقی میکنم که من اصحاب من موندیم. ستارگان آسمان به و هر کنومش رو بزنید شما هدایت بودی کرد بعد من شدم که اتفاقاً خود علمای احدیسانات خیلی این حدیث رو قبول ندارد. یعنی سندش رو تضعیف میکنند دلالتش رو تضعیف میکنند و نمیتونند عنوان یک دلیل قوی به خود این حدیث پافشادی حالا چرا؟ مثلا نمیتونم الان مثلا ساعت 5 و دیگه من دلم نمیاد که شما رو کلا تاطیر بکنم شاید شرعا جایز نباشه ولی به احترام از اون شاهدین یه رو یه رو به شما مرخصه میدم شما یه رو به شیش برگردید که تاقت جواب این چرا رو بشنوید و ما نخواهیم این بحث حساس <تصفح> <تصفح> حواله میدیم به هفته آینده پس نمازتون رو بکنید این رو در خب زود نشینید که یه وقت کمه بسم <سلام> اللہ الرحمن الرحیم و بینید استعییم و خیر ناصر و و صلی اللہ علی سیدینا محمد و آله تاهیم حالا و اولا شما به قبول کرده چون و قسمتی از این بخص بره هفته بعد بیفته سخنی ما در ناغ حجیت آراء صحابه و کاملی خب یک فرض برینی که صحابه ما کاملی چیزوی که میگن از پیانبر آموخته باشن یه فرض بگنیم البته این احتمال رو دادن اما اگر که قرار باشه که مثلا ما برگی احتمال تکیه نکنیم دنبال این هستیم که بردرین تکیه رو کنیم برمحصوص تکیه رو کنیم که خب در این زمینه حالا مهمترین نسی که وجود داره بحث نسحاوی کنیم و جون بعیی هم اختدهی کنیم ایتم اختده که بعضا یه جاهایی گفته شده در بار این حدیث دوتا مطلب میشه گفت یکی بحث سندیشه یکی بحث دلالیشه بحث سندش یه عده‌ی معتبر در چنین چیزی جعلیه از بزرگان اهل سنت یه عده‌ی یه معتبر هستم که چنین چیزی ارز کنم جعلی نیست ولی سندش سند ضعیفیه، اصناد ضعیف داره این برخوردی که علمای اهل سنت نسبت به این حدیث دارن یعنی اهل سنت و بزرگان اهل سنت، بعضی آقایم به جعلشم بعضی ها به زخفش هم زخف اما در شیعی این حدیث یه بحث دیگه داری که حالا بحث شیعه شو میگه. قبل از این که من بعد موضع شیعه رو بگرم بحث دلالیه این حدیثه که این حدیث دلالتش بحثیه. خب میگم دلالتش برینی که شما به هر کدوم از اسماق دنگرمبر که مراجعه بکنید بالاخره اونا شما های از سنت پیغمبر رو شما نشون میدن و شما هدایت میشید ما بعد یک سوال میگیم ده. می اگر اصحاب پیغمبر با هم اختلاف داشته آیا شما اختلاف رو در بین اصحاب پیغمبر ممکنی گاهی در مسائل شرعی گاهی در مسائل سیاسی فرض کنم خدمتتون اینا با هم یک اختلافات داشتن این رو شما چطور چه می کنید به ما می‌گویم می‌گوید اینا اختلافاتی برسلیل این چه سی ستهاده بفرد اختلافاتی برسلیل چی؟ ها؟ اشتراف می‌گیم، درسته؟ خب، ما میگیم که اصحاب پیانبر مجتحیلان اسلامی هست در تعریف بچه می‌گنیم که المجه تهدو لختی و یوسی مجتهد ممکن در فترهایی که میده دوچار خطا بشه مجتهد در فترهایی که میده ممکن دوچار بشه هر هم معجوره هر هم معجوره چطوری میگه که لیل مصیبه اجران موبال مخطع اجر و واقع تا اینجایی ای ای مشخصه میگن یعنی که آدم باید اجتهاد بکنه اجتهاد بکنه حالا وقتی اجتهاد میکنه ممکن که اجتهادش به ثواب هم برسه که فلاق و عجران دو تا اجر میبره یه عج برای اجتهادی که کرده یه عج برای فتوای درستی که داده اما یه وقتی یه کسی اجتهاد می‌کنه اجتهادش توان با بخطاست ولی چون اجتهاد کرده نظرش هم برای خودش رجته یه عجل را بهش داده میشه ما میگیم تا اینجا رو هم قبول داریم سلمنا این تو دلالتش آق دلالت, دلالت خب اجتهادی که توان با خطا باشد از خودجیت از حجیت شرعی برخوردار نخواهد بود یعنی در حجیت خطا را نشده اگر چیزی با خطا همراه شد به درجه حجیت و صندویت شرعی نمیدوسته میشه نظر، میشه نظر علمی چرا که مثلا ما در بازی شیخ توسی شیخ صدوق قائل به حجیت نمیشه ولی نظر دانشمند نظر دیدن، گاهی نظرشون با ثواب همراهه، گاهی نظرشون با خطاب همراهه این راجع بحث حدیث علم اصحابی کلیم و جمع و این هم و اختدهیتون در تفکر عقل سنت که از توش خودچیلیت شعری میاد، به دلیل اختلاف بعض اصحابی با بعضی میگه، ازش اجتهاد درمیان شهادی که یختی ولی سیره مثلا ما حتا جایی با واسه شما می‌دونی می بین شما مهاجر از صحابه می‌دونید بله علی را هم از صحابه می‌دونید بله چه اینا تو جنگیدن؟ جنتیان خب اینا به شهاداتشون عمل کردن یعنی اینا می‌خوان بینا اینا با شهاداتشون عمل کردن عایشه خب صحابیه است دیگه یه صحابیهی دانشمندیه امسیه به شهاداتشون عمل کردن حق که حق نمیجنگه ممکنه هر کنونشون درصدی از حق داشته باشن به فرض با این حدیش می‌کنن که از مشکرد و یختی و یسیب للمصیبه عجران، للمختی عجران واحد ما می‌گیم از اینها خودجیت شرعی درنمیاد نظر علمی درنمیاد فرق بین نظر علمی و خودجیت شرعی اما حدیث ابن اصخابی نجوم به روایت شیعه به روایت شیعه ببینید این حدیث اصحابی کنجون به روایت شیعه از شبک در معان اخبارش این سروره که یک بار پیغمبر می‌فرماید که اِنَّ اصحابی کنجون و اَيُّهُمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْتُمْ بعد حدیث تنباله داره یا رسول الله من اهل من اصحابوش؟ اصحاب شما چی میگه اهل بیتی اهل بیتی الو اه. اه. سر من چند دقیقی خدمت رو تماس میگیرم خوشم کنم میگه اهل بیتی و این حدیث اگر اصحاب تخصیص به اهل بیت بخوره اتفاقاً حدیث درستی و اهل بیت پیغمبر اختلافشون معنا نداره حرف اولشون با حرف آخرشون یکیه اول هم, آخر هم هم یکیه ما در اهل بیت پیغمبر و احمده دوازده گانه اختلاف نداریم اختلاف تصور نکنیم چون دانششون اجتهادی نیست متقیدم اینا با یک علم اعنایی دانششون آمیزه داره کسان اختلاف برشون پیش نداره. بعد در محجول بلاغه، این تفسیر یک شاعری داره در امیر در که اون محجول بلاغه در محجول بلاغه همی که علا اِنم مَثَلَ آلِ مُحَمَّدْ کَنْدُ جُوبِ سَمَا كُلَّمَا هَوَامِنَ وَنَجَمُونَ یا كُلَّمَا آبَامِنَ وَنَجَمُونَ تَلَعَ آخر مسئله غال محمد، مسئله ستارگان آسمان هر وقتی که یه ستاره ای قایب شد یا افول کرد، یه ستاره دیگه به جای او میاد. سید مرتضی، ببینید خوب دقت کنید، سید مرتضی یک آلم شیعیه، میگه اگر حدیث اِن از خوابی کنگو به ایهم اختده‌ایتون اختده‌ایتون حدیث صحیحی باشه، لازمش اسمت صحابه میشه نه عدالت صحابه چون بس بس حدایته هدایت شرعی بخونجیت کار داره نه فقط با نظر علمی اگر واقعا به همونی حدیث ناجی و باشه با عدالت صحابه کار حلو نمیشه چون ممکن آدم عادل باشه ولی خطا هم بیه خطا که عدالت موخه عدالت نیست منگه آدم عادلی هم شما کسر من نماز می ولی ممکن بعض از افتام اشتباه باشید اما اونجا پیغبر میگه به ایون احتلایتون احتلایتون احتلایتون مثل اون حدیث سقاله که میگفت که ما تمستک دوم به ما لند لو این احتلایتون یه چیزی تو مقوله لند از سیل مرتضا میگه میگه اگر یه حدیث میخواد درست باشه لازمش قسمت و بی اشتباهی خواهد هست خدا حدیس همت برای اصحاب پیغمبر مقام قسمت که قاید نیست فوقش مقام عدالت قاید هم عدالت با اشتباه قابل جرمه هی چون انبتی نمیخواد منعذی بکنه نتیجه کوششی که میشه دیگه ولی اسمت با اشتباه قابل جمع نیست امیدارم که از درس این شبت استفاده کرده باشید من آخرین نکته ای که برای شما میگم اینه شما کتاب های تاریخ تفسیر تاریخ تفسیر اهل سنت رو ببینید کتاب های تاریخ تفسیر اهل سنت رو ببینید در ارتباط با مقام تفسیری صحابی چند نکته رو به دستتون میاد اگر من وقت برای این نکته نکتهش مثال می زده. گاهی اصحاب پیغمبر از معنای آیه ای اظهار عکس می کردن یعنی صادقانه گفتم نمی صادقانه؟ می‌گفتم نمی‌دونیم مثلا به عمر می‌گم و فاکه و عبا میگه فاکه‌ای که روشنه اما عبا, عبا, عبا. عبا و خودش به خودش به النهازا لبا و تکلّف پیید بودن به معنای عبا تکلّف آوریم نمی‌دونم پسال کنم نمی‌دونم مثلا عبا وقت راجع به کانالباه و عبا بودش اگه این موقعیت‌ها می‌گفتم من معنی موقعیت رو نمی‌دونم دو، گاهی در پاسخ یک سوال جواب‌های متفاوتی دادن. یعنی مثلا ممکن بودی، یک صحابی درباره یک آیه یه چیز دیگه در یه صحابی دیگه درباره همون آیه یه چیز دیگه بگیه. دلیلش چیه؟ به تفاصیل جامعون بیان از دلال مراجعه کنید کنیم، نوشته ابن عباس اینه می‌گفت، موجود نمی‌دونم، ابن مسئول این رو گفت اون بودید که متفاوته با ما کده اوش سه گاهی صحابه یک دیگر را تخته ای کردن یعنی مثلا ابو هره گفته عایشه گفته کجا پیغم گفته، این رو و نرقده سه چهان گاهی بین نظرات یک طره سوال با هم اختلافه یعنی مثلا از ابن عباس زید یک ای چند مطلب نوشته شده مثال بزنیم مثلا ابن عباس بله مثالاش زیاده مثلا فرض کنید ابن عباس در قول اول اینو گفته الان که فخم ندریم همین نوعی که من گفتم با هر مثالاش موجوده بهش دوار ارجاع در کتاب توحید و نیز تفاسیر و شما به قرآن در اسلام علامه مراجعه کنید علامه تواتباری کنید من یه حرفارو مستند میکنم به نظر قرآن جناس علامه تواتباری از نظر شیعه نقلاهای صحابی آرهای شخصیشونه برداشتهای شخصیشونه میگه به این دلیل که هم بین آراء صحابه با هم اختلاف نظر وجود داره و هم بین آراء یک صحابی در طول عمرش اختلاف نظر وجود داره و این خیلی تدیئه‌ها بگید من اگر دانشمند باشم این من اگر قجت خدا باشم قجت خدا که به دلم چیزی الهام بشه حرف بیس سالیگی، چه سالیگی اما اگر من دانشمند باشم خیلی طبیعیه که امروز یه نظری می‌دم راجع آیه پنج سال دیگه مطالعه میکنم، دانشم بایدتر می‌گه یه حرف می‌دنم که حرف سال قبل من راستم نه‌بسیم این لازمه‌ی عنوم بشه‌ی هر من خواهم می‌گم اگر از ابنباس زیده یک آهی ای چهار دور باشه این عیب نیست تا وقتی که ابنباس یک بشره امکان رشد ببره منطقه خدا من از این چهارتا من دومال حجت میگردم من میخوام من دومال اثر میگردم در مقابل غیل و اشترا. بنابراین تفاثیل معصور عبد سنت به واقع و به حقیقت معصور نیستند غیر از بخشی که استنابشون به پیهنبر مورزه برایش بیه آرام و اجتهادات صحابه هستند شما هیچ دلیل شرعی برای خودجیدیت اونها در حقیقت اثر پیدا نمی کنید دلائب تو کتاب، نه تو سنت ما، با آنچه این پیدا نمی کن. حالا به همهار من وزیفه داشتم چون بحث من جایگاه اثر و حدیث در تفسیره با خود این اثر و حدیثاً شناخته می شد دیگه. که ما برای این تفسیر اثری در مقابل تفسیر اجتاریم. انشان الله که از درس امشب استفاده برده باشید، ما هفته آینده هم یک بحث تکمیلی داریم نسبت به این دو هفتهی که راجب جایگاه حدیث در تفسیر صحبت کردیم خیلی دلم میخواد سنیتر بیام بیرون که راجب حدیث در کلام، حدیث در اخلاق، حدیث در فلسفه و ارفان بحثهایی دارم که انشالله برشون به در نوبت های آینده براتون بگیدیم خیلی ممنون و مستشکر سلام